بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين و اليه والصحبي اجمعين اما بعد بسافتي من درس از درس هاي از سوره يوسف عليه الصلاه والسلام آيه 69 فرمودی الله جل شأنه ولما دخلوا على يوسف ا و اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون سمرك برادر يوسف اومدن برای بار دوم گرفتن آزوقه برادرشون برادر ناتنی برادر یوسف بنیامین رو همراه خودشون رو یوسف علیه السلام وقتی که برادرش رو میبینه یه گوشه میگیره و بعد بهش اطلاع میده میگه من برادرتم غمگین نشو در مقابل این کارهایی که برادرهای خودمون دارن انجام میدن فلما مجهزهم بجهازهم جعلت سقایه في رحله اخيه ثم أذن مؤذن ايتها العير انكم لسرقه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسرقه فلما جهزهم بجهازهم كهون بارشون توشهشون ازقهاشون آماده شد جعل السقاية في رحله اخي سقاية جام ظرف يا الزرفا يداربار جامي از جمها از قصر در بار رازقه برادرش بنیامین یوسف علیه السلام جعل السقایتا في رحل اخی کی این کارو میکنه خود یوسف علیه السلام نمیخواد کسی بفهمه یعنی کسی رو باکیلم نمیکنه که که بگه بی این اون انجام بده چون بحث عبرو حیثیت خودش یوسف علیه السلام این میکنه ثم مأذنم مأذن سپس یکی داد میزنه میگه کسی بگه ایتو هل عیر اینکم نسا کلان اومدید برای گرفتن آزویقه شما دزدید دوزدی کردید اینجا این نکم نساره خوب ما اگر اینجا دقت بکنیم یوسف علیه السلام مستحیم تهمت دوزدی نمیزنه خود به برادرش بنیم چون دوز نبوده دروغ میشه حرفش دروغ میشه حرفش گفت که شما دزدیدید یه چیزی دزدیدید. این چیزه چیه که دروغ نباشه پیامبر نباید دروغ بگه و صادق باشه تو حرفاش بعد حالا دو تا مسئله هست یکی اینکه خود یوسف اگر بخواد اینجا بگه شما دوز که ما حملش میکنیم بر اینکه خود یوسف رو دوزیدن از قبل و دوزی به انجا برمیگرده اون موقع که از پدرش جدا کردم به دروغ یعنی دوزی دیگه بچه رو دوزیدن تو چهاش انداختن این یک وجه تفسیری که مپسیلین دارن و وجه دیگر اینکه که اینجا یوسف کاره نیست یوسف دنبال داره میگرده جامع کجاست بعد به یک از سرباز میگه اون سرباز یا اون پاسبانی که تو قصر پادشاه مصر بوده میگه که کجاست این نیست اون داد میزنه میگه که ای کاروانی که اومدید بالا گرفتنا از خدا شما دزدید اون داد میده فعلا مؤذن یک کسی بانگی میده صدایی میزه جار میکشه که شما جامعه رو برداشتید دزدید این دوتا تا یک تفسیری که اینجا داره تو بحث خواب الان چون ما توی قرآن واجه ها داریم یک سری کلمات داریم که تو خواب نقش داره در تعبیر خواب نقش در تعبیر مثلا اونجا یوسف علیه السلام بحث انگور بود و بحث نان یکی دید که انگور رو آب گیره خب انگور دلات بر این میده که آب گرفتنش برای خمر استفاده بشه این کار کار پادشاهان بود اون شخص ساقی بود خب یوسف علیه السلام تعبیر میکنه که تو ساقی میشی به اون پست و منصب دوباره برخواهی گشت و تبرئه میشی چون داشت آب انگور رو میگرفت این گرفتن آب نشونه نجاتش بود تو بحث نان اون طرف خباز بود نانوا بود رئیس نانوا ها بود دید که نان از روی سرش پرنده ها میخورن این خودش هیچ کار نیست نمیتونه دست پشتک بده پس به سلیب کشانده میشه که نمیتونه از خودش دفاع بکنه پرنده ها رو بزنه و نان از سرش برداره پس به سلیب کشانده میشه و کشته میشه و از این رمز می گیره بیست نمیشه بلکه کشته میشه و همینطور هم میشه اینجا ولمای تفسیر خواب میگن که شخص اگر خواب ببینه که در خواب داره اذان میگه این فرق میکنه که این اذان دادن آدم صالحی باشه که اذان داره میگه یا آدم غیر صالحی باشه یا آدم بدی باشه این در سلفیش اومده مثلا طرف اومده تعبیر خوابش میپرسه تعجب میکنه ازش سوال میکنه یه شخص میاد میگه که من خواب دیدم که اذان گفته میشه آدم خوبی بود صالحی بود میشناختش بعد گفت که اذان فی الناس حج من ان شاء الله توفیق یک شخص دیگر اومد بیشو آدم تعبیر خواب خواست گفت که در خواب دیدم که اذان گفته میشه گفت که دزدی می‌کنی و رسوا میشی و همین هم میشه چرا از کجا رمز گرفت تو مؤذن مؤذن ایتها بانگو بونگو اذان گفتن یا برای حجه یا برای دزدی این دو تا حالت این آدم به شکلش نمیخوره که برای حج آدم بدیه میگه به خاطر همین این آیه بر اساس می پس حال شخص در تعبیر خوابم تاثیر داره رمزیه طرف حال اون شخص یه طرف دیگه و درام سوال که پیش میره میگه که بله این با توجه به این کد به این رمز من تعبیر خواب کردم. خاطر همین که میگیم همیشه شخصی که تعبیر خواب میکنه باید تسلط به قرآن داشته باشه. باید تسلط به قرآن داشته باشه تا بتونه تعبیر بکنه. این یه طرف قضیه. طرف دوم اون که اون کسی که داره از تو تعبیر خواب میپرسه خودش حی و حاضر باشه نه که پیام باید بفرستن شیخ تعبیر خواب چیه؟ فلانی تعبیر خواب چیه؟ فلانی خواب دیده. خب خواب برای خودش علائم داره. رموز داره نمیشه با یک پیام صوتی با یک نوشته با دادن چند تا رمز حلش کرد تا وقتی که شخص را نشناسی از نزدیک نمیتونی تو تعبیر خوابش بکنی یه سری سوالات هست نیاز میشه که تو بپرسی از شخص مثلا اون خواب به تو یک رمزی میده که به اعتبار افراد فرق میکنه میوه هست سیبه یک دختر ببینه یک رمز داره یک زن ببینه که بچه داره یا نداره یه تعبیری داره یک مرد ببینه یک تعبیر دیگه داره هر میوه چون میوه شییررییه خوشگاهامییه. اصلا هم همینطوره دختر ببینه میوه داره رو میکرده میخوره یا میوه از ذرخ میکنه خواب ازدواج میکنه. حامله گم همینطور می که حامله خواب ازدواج میکنه چون هم بر روزیه و اونم اون هم باشه وهرجات میشه پس ازدواج میکنه. اون پسرش هم همینطور که ازدواج نکرده. ولی اون زن نه بچه دار میشه مثلا یه بند خوددا اومد پیششه من از خوابی پرسید گفت که. خواب دیدم پدرم سیری زده زیری گوشم خب گفتم مجده هست الحمدلله الله باید بچه بده بچه نداشت دهست بونزه ساله بچه نداشت گفت که چطور پدرم که سیری زده حتما من کاری بده کردم سیری خوردم گفتم نه الله در قرآن در بحث همسر ابراهیم علیه السلام ساره میگه فسکت وجهها هست سورتش میدنه سیری میدنه زیری گوشش میگه فسکت وجه هست و قالت عجوز و پیر زن، زاو باید بچه دار بشه که ممکن نیست. اصن سیری زدنه، یک رمزی باید قرآن روش تسلل داشته باشه که بتونی تعبیر کنی و اون شخصم بفهمید جایگاهش از حالت اجتماعیش مجرد متأهل بچه داره بچه نداره چون اگر مثلا بلفرد بچه داشت حالا سیری زده خب یه تعبیر دیگه پیدا میکنه. یا میوه‌برداشت کرده یه تعبیر دیگه داره. یه سری چیزها هست ما در خواب ازش وحشت زده میشیم. می بینیم که اومدن دست و پا ووسن ارتشی یه سپهی تیراندازی فلانه کشتی میشین مثلا این خواب معمولا یا شیطان بخواد که ما بحصه بخوریم یا اینکه الله برمون طول رو هم نویشته. مرگ خودت مرگ هر کسی معمولا طول و عمره مرگ در خواب خوبه آدن نبا بخوره. این به طور کلی دارم میگم چون این خواب ها زیاد تکرار میشه. مرد معمولا وقتی که در خواب میاد دراد بر این داره که اون مرده محتاجته میگه که من سردمه من گرممه لباسش pore هست نمی دستش دراز میکنه مثلا میگه که فلان چیزو به من بده اینا همه احتیاج و حاجت اون مرده و میت به دعای تو به صدقه تو که بی یادش خواب مرده است به طور کلی هر وقت انسان بینه چند روز پیش یه بنده خدا خواب دیده بود که بهش گفته بودن یه مرده ما تو خواب سوار اتوبوسش کرده بعد گفته دیگه خب 15ام دیگه حرکت 15 رمضون بعد همون شب هم شباب بهش پیام دادن گفتن که فلانی اینجوری خواب دیده گفتم حسین نخور اتوبوس نه بال میگیره نه میره نه تو قبر میره اتوبوس میخواد کجا بره هیچ بر مرگش نیست خب شاید یه طوری باشه که مثلا به فرد یه وجهی از رفتن از دنیا داشته باشه سوار اتوبوس آدم معمولا میشه که بمیره یعنی اتوبوس آدم زیر قب می یا اتوبوس با اتوبوس با آدم بالا می برن. رمزی از قبض روح درش نیست رمزی از مردن توش نیست سوار آتوبوسش کرده حتما یک توفیقی یک عمل صالحی پیدا میکنه اون شخص آدم صالحی بوده گفته بهش بیا سوار آتوبوس یا سوار ماشین شو این شخصم مثل اون توفیقی یک عمل صالحی پیدا میکنه بکان بکن الله غفور رحیم معمولا خواب مجذه است هر ما گفتیم خواب نمونه های مختلفی داره و جایی میشه مجذه باشه جایی میشه هشدار باشه و مثل مثلا ما هر سه رو داشتیم اون کسی که ساقی بود نجات یافت اون کسی که نانوا بود خوابش چی شد خوابش یک هشدار بود باید توبه بکنه مرگش نزدیکه یه خوابی هم هست هشدار همراه با تو برنامه با دوزی مثل خواب پادشاه بهت برنامه میده که الان تو نیاز داری این کارو انجام بدی اینجینی چیزی در پیش رو داری که باید انجام بدی خب بریم به ای آیه افتاده یک قالو و اقبلو ماذا تفقدون قالو برادره یسوف فرن با کمال شخصیت و اون قدرت و اون حیبتی که داشتن رو میکنن میگن قالو و عليهم علیهم رو به اونا کردن رو به اون سرباز ها پاسبان های دربار قصر پادشایی مص ماذا تفقدون نمال چی هستید؟ ما دوستیم اگه شما الان اومدید داد میزنید دوست که ما دوستیم مگه چی دنبال چی داریم دیگر دید از خودشو مطمئنن خب این نوع کردن الله جل شنو از اون واقع با این کلمات در این عبارت کوچک یعنی انسان اون شخصیت را داره میخونه فاقبلو رو کردن خب این رو کردن شدت داره یعنی این جا خوردن بعد ما خودمون مطمئنیم فاقبلوا فورا بدون اینکه جمهوری پسی داشته باشه پیشی داشته باشه بخواد مقدمی چینی بکنن چیزی بگن نه مستقیم فاقبلوا رو کردند و گفتن ماذا تفقدون شما چی دارید میگردید؟ شدت رو می‌رسید ماذا تفقدون چی گم کردید شما شما چی دارید میگردید؟ یعنی ما هیچی نداریم پیش ما هیچی نیست ما خودمون مطمئنیم گم کردید ما تفقدون شما گم کردید قرار بر نیست که ما نداریم که ما دوزین است صدشون مطمئن نه ماذا تفقدون قالوا نفقد صرع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعين قالو نفقدو صرع الملك جامی از جام های دربار مال پادشاه گم شده نفقد و گمش, گمش کردیم ولمن جاء به حمل بعیر کسی که بیاره پاداش هم داره خب الان چی اومد الان یک مجده هم اومد یک پاداش هم اومد حالا چم جواله بهش میگن تو فقر یک کادوی هدیه ای پاداشی در مقابل یک کاری در فقه بحثش میشه که درسته درست نیست برای شرعن سه در صورتی که از یک طرف باشه مثل من پاداشی در ازای یک کاری من انگشتر رو گم کردم فلان چیز م گم کردم میگم اگر پیدا کردید من این فلان چیز بهبت میدم. اون پول حاله بد بله حلاله یا مریزه من درمانش میکنم شرط میذارم میگم اگر خوب شد این ماشین باید بری به من یا این فلان چیز بدید شرط میکنی مثل صحابه رفتن یک جایی بعد رئیسشون رئیس اون قبیله مریض شده بود. رفتن آب خواست ندادن بهشون به غذا هیچی ندادن. اینا مسافر بودن. تو جنگ بودن داشتن بعد گفتن ما سیدمون رئیس قبیله مریضه مریزه اگر درمانش کردید آب اوزوغه به تو میدیم یک از صحابه میگه من این کارو میکنم ولی شرط خب میره میروشو میخونه هفت بار الحمد میگه میکنم فاتحه بعدم بهش میدن از اون آب و غذا برمیدارم میخوره مالی هست که اومده کاری انجام داده اون مال را گرفته صحابه ایراد میگیرن بعدا نمیخورن میگه نه اصلا درستی تو در مقابل قران پاداش گرفتی اصلا درستی نیست نمیخوری میره پیش رسول شکایت میکنی و من نظر رسول الله علیه و آله گفتن که اینجینی چیزی شده گفت که داری چیزی به من بدید یعنی چه یعنی کارتون درسته نه اینکه خود اون راقی بیاد نرخ برای خودش تعیین کنه بعد از روخات هستن میگه اول دو میلیون بزن، ده میلیون بزن تا من بیام دنبال شغل کاسبی کاسبه این ملا نیست این شیخ نیست این کاسبه این داره با قرآن کاسبی میکنه اینکه کسی بهش چیزی بده مشکلی نیست ولی اینکه قران خوندن روی دیگران روخیه کردن بهانه به ای برای روزی در آوردن قرار بده کاسیبی را به این نه این درست نیست حرام قرآن خوندن شغل نیست مثل که سر قبر کسی را اجاره میکنه میگم بیا سر قبر فلانی قرآن بکنه چی نیستی ما در شهر نداریم درست نیست کرایه میکنن پول زوره شغل نیست بله امامت شغله از آن دادن شغله ولی که این در مقابل وقتی که از خودش گذاشته و اهمیتی که داره به مسجد میده و الی آخر میشه ولی این که یک شخص خاص بیاد خودش رو در پستی در یک شغلی قرار بده که از اون بخواد بودجه در بیاره بخواد هزینه کسب کنه این کار این شغل حرامه درست نیست شرعاً قرآن خوندن رو هر کسی میتونه بخونه و شر ابزار داده که خودت رو خودت بخونی نیازی نیست کسی رو بخونه خاطر همین در بحث اون افتاد نفر که واده بهش بدون حساب کتاب میشن میگه که همو الذين لا يسرقون طلب رقیه نمی کنند شخص شده خودش رقیه بکنه خب پس اینجا بحث پاداشی هست که گذاشته شده خودشون هم تعیین کردن خود شخص اومده میگه که یک بار اضافه بهتون میدیم از بار شطور یعنی باره یک نفر اضافه حمل و بعیر و انا به زعیم من یعنی اون شخصی که اومده یوسف نیسته اینجا اون شخصی که از دربار پادشاه مصر اومده میگه منم متکفلشم منم چیز را به عهده میگیرم به عهده من که این پاداش را بهتون بدم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارخين خودشون مطمئنن دوز نیستن فرزندان پیامبرن دزی بکنن پس خودشون مطمئن ما دوزی بکنیم قالوا تالله قسمم یاد کردن برای حرفشون حروف قسم چند تا سه والله بالله وتالله والله من این کارو نکردم بالله من این کارو نکردم که من این کارو نکردم هر سه تا از این حروف واو و با و تا بهش میگن حروف قسم اینجا الله جل جلاله از این حرف قسم یاد میکنه که اینها گفتن تالله لقد علمتم شما میدونید ما اجئنا ما نیومدیم برای فساد کردم ما ما خوبیم اگر بد بودیم که کالاهایی که برایمون بار اول برگردونده بودی دوباره برش نمیگردونیم شما اون کالایی که ما وردیم برای خرید آزوخه شما اون کالاها رو دوباره بهمون برگردوندید ما پسش وردیم اون کالاها رو دوباره پس وردیم یعنی ما اینقدر از خودمون مطمئنیم و شکی هم نداریم با. نه هم که فساد بکنیم ما آدم فاسدی نیستیم اگر فاسد بودیم بود اونجا فساد می‌کردیم بود کالاها ها را که اوورده بودیم برای معاوزه برای عوض بدل کردن با آزوغه باید ما انو نگه میداشتیم یا میگفتیم کسا ما ندیدیم و در صورتی که نه ما صادقه بیبرید و اووردیم پس اووردیم و دادیم تحویل شما با مکن نسارقیم ما دوز نبودیم و دوز نیستیم از خوشون دفاع کرده. یعنی علما اگر کسی تهمت اتهام بی زده شد برای یک کاری باید خودشو تبرئه کنه یا مثلا کسی میاد در بر یک شخصی صحبت میکنه تهمت بهش میزنه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين خصوصا در این دوره زمانه که از تو مردم فسق شده امانت نیست دیانت نیست بیشتر مردم چنینن درشون دیانت نیست تقوا نیست ترس از الله نیست قليل من عبادي شکر آدم دیندار کمه صحابه رسول الله صلی الله الله این آیات رو در شعرش نازل میکنه. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. کن برو نگاه کن حرفش درست حرفش درست است. تحقیق کن. خصوصا قیل و قال زیاد میشه. حرف و حدیث زیاد میشه. بازی را میندازن برای تخریب کردن برای بازی کردن با شخصیت و آبروی یک شخص. شخص حیثیت خودش باعث هز میکنه. آبروی خودش. این قضیه دو بار هم داریم. اینجا برادران یوسف از خودشون دفاع میکنه. اونجا یوسف وقتی که پادشاه همه یکی هست که خواب را تعبیر بکنه بعد اون ساقی میگه من بلدم من میدونم یک کسی تعبیر بکنه بعد بیان پیش یوسف علیه سر میگه خواب تعبیرش اینه خب بعد میره پیش پادشاه مصر میگه خب عجب پس کسی پیدا شد که بدون این رمز و بفهمه بعد گفت بله هست یوسف تو زندانه برو بیارش اومد پیش یوسف گفت نه برو پیش پادشاه مصر میگم من بیرون نمیام تا اینکه اون زنا بیان بگن که چرا دستشون بریدن مو اول النسوه اللاتی قطعنا ايديهن چرا دستاشون بریدن چرا دستشون بریدن اول در پرونده دو دوباره باز بکنن که من چرا به زندان ابرو آبروی خیلی مهمه چون خب الان این آبروی حیثیت سبب میشه که چی تبرئه شدنش که به این پست و منصب و مقام برسه تمینان به اعتماد پادشاه مصر بیوصف چند برابر میشه وقتی که صدقش میبینه وقتی که برائتش میبینه پاکیش رو میبینه علی یوسف هم هدفش هم همین بود رسول الله صلی الله میگه من تعجب میکنم اومدن مجد بهش میدن پادشاه تو رو میخواد از زندان آزادت بکنن ولی تو میگی نه اگه من بودم رسول الله صلی الله میگفتم باشی چشمیان بیرون این همه سال تو زندان بوده ولی با وجود سب میکنه میگه اول برید به پادشاه مصر بگید زنا رو بیاره چرا دستاشون بریدن بعد تبرئه شدم چشم شرطش رو گذاشته تبرش از خودش مطمئنه خب الان بخواد وزیر امول مالی دربار ثپشه وزیر خزانداری ثشه گفتم مادر دنیا بود اون موقع نف نبود گاز نبود هیچی نبود مردم همه آضوقااش رو میرفتن از مثل بین خوردنی ها از عدس از ن خود از همه چیز آبی که داره جای دنیا نداره آب شیرین رودخانه نیل محروف دیگه که و دستاصلدم که از کوسر سرازیر میشه. بر زمین این رود چشمش در آسمان هاست خب پس مصر مادر دنیاست در اون دور از زمان و بسئول دنیا قرار یوسف بشه و باید اون کسی که در این منصب قرار میگیره شخص عادل و امینی باشه که مردم براش با پوش درست نکنن صفه درست نکنن مهمه که سو پیشنی نداشته باشه صلی الله علی محمدین و علی محمد.